بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بخشنده و سأل سائلون بعذاب واقع تقاضا کننده تقاضای عذاب کر که واقع شده دین ذالکافرین نیست له دافع این آزار مخصوص کافران است و هیچ کس نمی‌تواند آن را دفع کند. الله از سوی خداوند صاحب مصباح‌های بلند است. تا آرزو الملائكة و روح‌هایی فی یوم کانم خداوهو الف سنه فرشتگان برو به سوی او رووج میکن در آن روزی که مقدارش تا چاز است. مای این و بنابرا این صبر جمیل پیش کنیم این نه میار را و بیکمان آنها آن روز را دور می بینن و و و ما آن را نزدیک می پینیم همان روز که آسمان چون فلزه کداخته می شود و تکون کوها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد دون و هیت دوست سمیمی صراف دوستش را نمیگیرند یوبصقومونهم یا ود المجرم لو یستذی من عذاب یومئذ ببنی انم را به آنها نشان میدهند چنان است که گنهکار دوست می دارد در خود را در برابر عذاب آن روز صدا کند و اخی و همسر و برادرش را و فقیلته هیلتی تقویه و قبیله اش از او موجهت می و من فی الارض جمیعا ثم و تمام مردم روی زمین زا تا موجه نجاز شود کلل انها اما هرگز چنین نیست شود خواجه صوفان او آف پشال دست و پا و پوست سر را میکند و میبرد برد من ادبرا و با کسانی را که به فرمان خدا پوش کردند صدا می‌ساند و جمع آنها که اموال را جمع و ذخیره کردند اینن الانسان لقلقهاوا حقا که انسان بخیل و کم طاقت آفریده شده است ایذ مسه الشر جزوعا هنگامی که بدی به او رسد بی تابی میکند و ایذ مسه القی منعا و هنگامی که خوبی به او رسد مانی دیگران می شود إلا مگر نماز گزاران آنها که نمازها را مرسبند و جا می آورند و الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حق معلوم و آنها که در اموالشان حق معلومی لزائر و المحروم برای تقاضا کنندگان و محرومان و الّذین یصدّقون بیوم الدین و آنها که به روز جزا ایمان دارند و الّذین هم من ربهم مشفقون و آنها که از عذاب پربردگارشم دین ناکند این عذاب ربهم غیوم مأمون چرا که هیچگاه خود را از عذاب پربردگار در امان نم بینم والذین هم لفروجهم حافظون و آنها که دامان خیش را اطبی افتی حفظ می کنند علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فا انهم آمیزش جنسی جز با همسران و کنیزان ندارند ولی در بحرگیری از اینها مورد سرطنش نخواهند بود فمن و ذلك فاولائك هم العادون ما ورایدی این را طلب کند مسجاوب است والذین هم لاماناتهم وعهدهم و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت میکنند والذین هم بشهاداتهم قائمون، بأنها كقيام بأدوي شهادة الحكم نموجن. Los والذين هم على صلاتهم يحافظون، بأنها كبرنامج ماضي بتاران. أولئك في الجنة. فما للذین کفرون قبل کم افطعین این افراد در باقه های بهشت گرامی هند پس این کافران در چه می شود که با سرعت نفس تو می آکند عنی الیمین و عنی الشمال عزین افراد با چفت گروه گروه أیطمع كل امرئ منهم أن دخلننم آیا هر یک از آن ها دارد که در بهشت فر نعمت الهی وارد شود قلا نا خلقناهم ممالمونهرگز چنین ما آنها راست آنچهی خودشان میدانند آفرید اییم بله او قی و بی را و بیلژر بیول مواردرییم ن مادیون وستگانند ها و مغذب ها که ما بی گمان قادریم آ! <تصفيق> دل خیرم آنها را و ما نحن بمسبوقین بر این تجاگ انها را بکسان مغلوب نخواهیم شد. فزوهم یخوض و را به خود تا در باطل خود خود بند و بازی کنند تا زمانی که روز موعود خود را مراقبت نما من خوبی همان روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند گویی به سوی پاتفایشان می خاشعتاً ارصارهم توحقهم ذله ذالک اليوم الذیکن یوعدون در حال که چشم حالی آنها از شدت وحشت به زیر افتاده و پرده از زدت بخاری آنها را پوشانده است این همان روزی که به شما وعده داده می شود